سلام. دایره سطحش خیلی بزرگتر از اونی که من فکر می‌کردم. به من گفتم اصلاً عقبا نرم، من فکر کردم پشتش خالیه. خب من یه نویسندم. داستان نمی‌نویسم، فیلمنامه نمی‌نویسم، مقاله می‌نویسم. توی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که توسط شورای کتاب کودک تهیه میشه. من خیلی خوش‌شانس بودم که در اوایل 20 سالگی فرهنگنامه را شناختم و بهش ملحق شدم. استاد نجوم دوره لیسانس هم، سر از کلاس ها خیلی گذری اشاره کردن که یک جایی کار میکنن که به صورت داوطلبانه مقاله های اخترشناسی مینویسند برای کودکان و نوجوانان و من ایده را راستش رو هوا قاپیدم، چون من عاشق اخترشناسی بودم، عاشق نویسندگی بودم و خب کار داوطلبانه را هم خیلی دوست داشتم. پگیری کردم و به فرهنگ نامه رفتم. توی فرهنگنامه وقتی یک کس جدیدی ملحق میشه باید جلسات توجیهی رو برگزار برای آشنایی با فرهنگنامه و بعد از اون کارگاه های نویسندگی، مرجع شناسی، آشنایی با تصویر و بعد از اون طی آموزش‌هایی که ادامه دارن و هیچ وقت تموم نمیشن اتفاقی که میفته اینه که شما یک مقاله آزمایشی تحویل میدین و بعد از اون میشین نویسنده رسمی فرهنگنامه. و این اتفاقا خب برای من افتاد. من اولین،, اولین چیزی که یادم از اولین دیدارم با خانم میرهادی توی جلسه توجیهی هست. کمطور که, که الان موجه برنامه هم اشاره کردن. بنیانگذار فرهنگنامه کودکان من و جوانان و شعره کتاب کودک هستن با هدف پربار کردن ادبیات کودک ایران. توی این جلسه وقتی برای ما توضیح می که چرا فرهنگنامه به وجود اومده چرا فرهنگنامه خوبه چرا ما بهش نیاز داریم و بعد با اون عشق و شور وصف برامون گفتن که چطوری شروع شد، چرا انقدر خوبه و من خیلی تحت تصدیق قرار گرفتم و فکر نمی‌کنم کسی باشه که میتونه سرفاشون رو بشنوه و تحت تصدیق قرار نگیره و نخواد که از همین الان شروع کنه این اتفاق افتاد، من از همون موقع شروع کردم و قبل از اینکه بریم جلوتر، همینجا یکم هم سب کنیم چند نفراتون فرهنگ خب، بد نیست. چند نفرتون با فنگنامه کار کردین و نه فقط اسمش رو خب، خیلی خوبه، خیلی ممنون. فرهنگنامه فنگنامه کودکان و نوجوانان در واقع یک دایرتال معارفه، یک دانشنامه است. که برای کودک و نوجوان ایرانی ده تا شنزده ساله تدوین شده، اما نه به این سادگی. در طول سالهای متمادی و به کمک نیروی داوطلبانه و با کمک مردمی، و با حمایت متخصصانی که این نیاز رو دیدن که کودک و نوجوان ایرانی نیاز به یک منبع برای خاص خودش داره. خب چرا اصلا باید فرهنگ نامه داشته باشیم؟ ایرانی یا غیر ایرانی؟ اینجا احتمالا بعضیتون پدر، مادر هستین یا مربی و معلم هستین، درسته؟ درسته؟ خب خوبه. ازتون خیلی سوال میشه. بچه ها خیلی سوال میپرسند. چطوری جواب سوالشون رو میدید؟ کتاب‌ها رو نگاه اینترنت رو نگاه می‌کنید، مسلماً ویکی‌پدیا رو نگاه می‌کنید. اما هم نمی‌دونید. ویکیپدیا همیشه جواب سوالا رو نمی‌دونه. اطلاعاتش گاهی غلطن، گاهی ناکاملن، گاهی بروز نیستن. بعد اینکه بتونید جواب سوالا رو به دست بیارید، واقعاً چقدر حاضرید وقت بذارید؟ یه جواب یه سوال ساده رو به دست بیارید. خب مسلمان خیلی وقت نمی‌ذارید. دقیقاً به همون دلیلی که برای اینکه یه محصول ارگانیک بخواید خودتون نمی‌کاریدش. برای این چیزا ما به یک مرجع موثق و قابل فهم و روون و معتبر نیاز داریم. خب، حالا اینا را از کجا پیدا کنیم؟ چقدر میتونیم به این و دسترسی داشته باشیم؟ اون زمانی که این ایده مطرح شد، بین خانم میرهادی و همکاران ایشون هیچ نمونه ایرانی وجود نداشت. نمونه‌های خارجی که وجود داشتن، حتی ترجمه نشده بودن. همین الان، اگر بخواید دنبال نمونه‌هاش بگردین، خیلی کمن ب منبع مستند برای کودکان و جوان خیلی کم داریم. و خیلی فرق میکنه منبع برای کودکان و جوان یا برای بزرگ سالان. به چه دلیل؟ به این دلیل که خیلی راحت نیست که شما یک منبع از یک دا مععرف بزرگ سال بخونید و برای بچه ها تبدیلش کنید. چون این فقط ساده کردن کلمه ها یا مفاهیم نیست. شما باید بیشتر از اون با دانش پایه بچه هاشنا باشید. با این داشته باشین که این دانش آموززی که شما برش توضیح میدیدید. چه کلماتی، چه مفاهیمی رو توی مدرسه، توی جامعه یاد گرفته و دانش پایش چیه؟ حالا چرا ما ترجمه نمی یه دلیلش اینه؟ دلیل دومش اینه که اگر بخوام مقاله رو ترجمه کنیم کودک و نوجوان ما جواب خیلی از رو نمیگیره. توی هیچ کدوم از این دارست معرفه که الان تو دنیا استفاده میشن و خیلی عالی هن. در مورد زاینده رو توضیح نداده. در مورد دو توضیح نداده. در مورد فریدون مشیری توضیح نداده. چون برای اونو مهم نیستن. برای ما خیلی مهمه. در نتیجه ما به یک نمونه ایرانی نیاز داریم. بسند تو کودکان و نوجوانان اتا معتبره مستنده روون، ساده و قابل فهمه بیش از 5500 مدخل داره از تصویریه 30 درصد این فرهنگنامه تصویره و خب میبینید که خیلی بی‌نظیره که شما هی ورق بزنید و تصویر رو نگاه کنید و حتی گاهی حتی مقاله ها رو نخوندید این کاریه که من خیلی انجام میدم اصلاً چیز بدی نیست علاوه بر سی درصد حجم مقاله ها در مورد ایرانه در مورد ادبیات ایران، تاریخ ایران، جغرافی های ایران، هنر ایرانی، دین و هر چیزی که شما اسمشو ببرید. بیست درصد دیگه به ایران اشاره داره چطوری اشاره داره؟ مثلا تمام مقالات گیاهان و جانوران به نمونه های ایرانی اشاره دارن و اگه از اون نمونه ایرانی تصویری باشه توی مقاله تصویر نمونه ایرانی میاد مثلا در مورد مقاله خرس فکر کنم شما چند تا بیرون یه ورقی زدین فرهنگنامه رو و نگاه کردین مقاله خرس باز بود خرس ایرانی تصویر نمونه‌های ایرانی خرس وجود داره و در موردش حرف زده شده یا حتی در مورد مقاله‌هایی که منحصر به ایران نیستن مثل اخترشناسی مثل پزشکی مثل دوبلاژ نگاه به ایران وجود داره یعنی در قسمت تاریخچه به این اشاره شده که اختراشنسی در ایران، اصچه دوره ییاقاتش رو چه, چه دستاوردی داره، در مورد تمام ورزش‌هایی که وجود داره، به دستاوردهای ایران در اون رشته ورزشی از تاسیس فدراسیونش تا خیلی از اینا اشاره شده. به این دلایل این فرهنگنامه یه چیز به سمت اتاق فرمان، یه چیز خیلی بی‌نظیره. می‌بینید مقاله برج رو می‌بینید، مقاله بریل رو می‌بینید، جانوران آم فرخ، رنگ، تاجیکستان و همه این پس فرهنگنامه بی‌نظیره و ما بهش نیاز داریم. یه چیز دیگه که می‌خوام در موردش حرف بزنم. اینه که تو این فرهنگنامه، این ساختاری که با هم، همه با هم کار می‌کنن، که مؤسسش خانم میرهادی بودن، وقتی از بیرون بهش نگاه می‌کنید، نگاه می‌کنید یه مؤسس می‌بینید و بعد خب مؤسس خانم میرهادی مخصوصا الان خیلی همه راجبشون حرف میزنن ولی من میخوام بگم که اینطوری نیست. توی فرهنگنامه سلسله مراتب نداریم. توی فرهنگنامه همه با هم یه چیزی رو تولید میکنیم. توی فرهنگنامه و در واقع تفکره که خود خانم میرهادی شکلش دادن و همکارانشون. به این صورت که به ترویج دانش تمرکز میشه. و به این که اطلاع در هست همه قرار بگیرن و به اینکه یه چیزی بین شما حواس منو پرت کرد متاسفانه خیلی حواست هم بحث بود واقعا فوزش بخوام داشتم در مورد میگفتم که ایشون عشق و که خودشون تو زندگی خودشون حس می‌کردن رو برای همه قابل فهم کردن، برای همه توضیح دادن که چرا فرهنگنام بی نظیره. و همانطور که گفتم خیلی تو انتقالش هم موفق بودن. همه ما این عشق و شور رو چطوری درک می کردیم وقتی که توی م... به وجود آوردن و محصول شرکت داشتیم. وقتی که در روند به وجود آوردن این محصول بی نظیر خودمون رشد می کنیم و خودمون متفاوت میشیم و جنبه های متفاوتی رو می بینیم. توی فرهنگنامه نه تنها سلسله مراتب وجود نداره و همه ی جورایی با هم برابرند و همه با هم کار میکنن اینطوری بنا شده که همطور که میدونید از هجده آبان گذشته خانم میهادی از بین ما رفتن اما فرهنگنامه تموم نشده فرهنگنامه تموم نمیشه ایشون نقش ها رو تکثیر کردند. انگار یه عالمه از خودشون به وجود آوردن و ما همه مصممیم نامه ای که ایشون آغاز کردن و تا 16 جلدش رو منتشر کردن به پایان برسونیم. نه به خاطر اینکه هدف کسی دیگه‌ایه، به خاطر اینکه ساختار اینجا اینطوریه که این هدف همه ای ما شده. بسنت اوقات فرما. ام گروه‌های تخصصی رو می‌بینید که کار می‌کنن. یه نکته جالبی در مورد خان که هست که به خاطر تفکرشون و به خاطر تجربه مدیریت 25 سالشون در مدرسه فرهاد خیلی اعتقاد داشتن به اعتماد کردن به بچه‌ها و ضرورت مشورت کردن با بچه‌ها به همین دلیل از ابتدای آغاز فرهنگ از ابتدای نگارش فرهنگنامه مشورت می‌شد با کودکان و نوجوانانی که مخاطبین این فرهنگنامه بودند که مقاله ها رو خودشون ارزیابی کنند. ببینن جواب سوالشون هست قابل فهمه جامعه کامل بینقصه و این روش این روند تا همین الان هم ادامه داره و ما گاهی وقتا اشاره مشورتی خواهش میکنیم بیان و مقاله ها رو بازبینی کنن و بخونن و ما همیشه با نیاز بچه های امروز پیش بریم و جلو باشیم. چون خیلی زور رسیدم به اینجا مجبورم دوباره چک کنم دوباره گوزش میخوام. نه هیچ مشکلی وجود نداره همه حرفایی که میخواستم زد. یه نکه ای که به نظر من به نظر شخصی خودم واقعا توی این مهمه که ما توی فرهنگنامه هنوز همون عشق و شور اولیه رو حس میکنیم. یکیش به همین دلیل تفکر و مجرریاس خان میرهادید و یکیش به نظر من استفاده از نیروی داوطلببه. شما فرض کنید که نیروی داوطلب نبود. یه کسایی به خاطر پول به خاطر اجبار به خاطر خیلی خیلیجزای دیگه میآمدن و همکاری میکردن و نارزی اعتتیان ناکامییا و همه بی علاقه خودشون رو می آوردن سر کار. اما توی فرفهمهنگنامه کار داوطلببان است در نتیجه کسی که اونجاست میخواد اونجا باشه نه جای دیگه و اونو به همه جاها ترجیح میده. و در تمام سالهایی که من اونجا بودم و خیلی قبل‌تر از اون از ابتدای انتشار فرهنگنامه و تدوین فرهنگنامه آدم‌های خیلی زیادی اومدن اونجا آموزش دیدن و بعد رفتن و این هیچ‌وقت چشغالی نداشته این دانش کسب شده و از اونجا بیرون رفته و پخش شده و این همیشه چیز کاملا مناسبی بوده اما کسایی که موندن با تمام وجود موندن و هر روز بهتر شدن و موندن و ایده که فرهنگنامه رو خیلی با کیفیت کرده همه ما الان درگیر اینیم که زمین خیلی جای نامناسبی برای زندگی شده. آلودگی محیط زیست، آلودگی آب، هوا، گرمایش زمین، جنگ، فقر، منقرض شدن حیوانات و خیلی درگیریم و بعد اساساً ناراحتی می‌کنیم. بعد میریم سراغ اینکه توی های مختلف فعالیت کنیم و بخوایم این زمین رو نجات بدیم اما اگه یکم اعقاب برگرده نگاه کنیم این زمین رو ما به این شکل را و خیلی آگاهانه بوده اصلا فکر نکنید آگاهانه نبوده دنچه اشتباهی اینطوری نشده که حالا بخوایم با فکر درست درستش کنیم ما فکر بگنم به جای اینکه بیایم و از یوز پلنگ و خرس و همه اینا جوی گیری کنیم. فکر نکنید این کار بدیه اینا کار خوبیه اما فکر می کار مهمتری که ما باید انجام بدیم اینه که نسل بعدی بچه ها رو یعنی بچه رو تربیت کنیم و چطور این اتفاق میفته با فرهنگنامه فرهنگنامه حلال همه مشکلات. فرهنگنامه کتابخونی رو تربیج میکنه فرهنگنامه پرسشگری رو ترویج میکنه. فرهنگنامه یک تفکر اجتماعیه. یک آره، فرهنگنامه ترویج میکنه پرسشگری رو، کتابخونی رو، مطالعه رو و دید مناسبتری به بچه‌ها میده. های انسانی رو تقویت میکنه. به نظر من همه ما به جای اینکه ریزه ریزه علیا مختلف بکنیم بیایم به فرهنگنامه ملحق شیم بیایم و یه ریزی درست بکنیم برای یه نسل بعدی نسلی که تولید میکنن نسلی که جنگ نمیکنن میدونن باور دارن که میتونن پرسشگرن انتقادی فکر میکنن به جوابهای نادرست و غلط و ناکامل راضی نمیشن و بذاریم خیلی دکمه حساسه و بذاریم که اونها زمین رو درست بکنن. به خاطر اینکه اونها زمین رو خراب نمی‌کنن که حالا بخوان درست بکنن. اونها جور دیگه ای فکر می‌کنن. و این را از کجا میگم؟ از نتیجه بچه می‌گم که از زمان چاپ اولین جلش در سال 71 مددمم با فرهنگنامه کار کردند. مدم توی جامعه ای بودن توی خانواده ای بودن توی مدرسه ای که خوندن فرهنگنامه توش توصیه شده. در نتیجه اینها شکار کردند؟ وقتی با هاش روش کردن تبدیل به آدمای شدند که این اثر رو توشون میدون می‌بینیم. درنچه این حرف کاملاً معتبر و موثقه. بیایید و همه چیزو رها کنید. به فرهنگنامه ملحق شید. فرهنگنامه واقعاً بهترینه. و نکته دیگه اینجایی که ما توی ایران میلیون‌ها آموز داریم. هزاران مدرسه داریم. فکر کنید که اگر اینا میتونستان دسترسی داشته باشن به فرهنگنامه چه اثر بزرگی میتونست داشته باشه. تاچوله حتی زمان کوتاهی همی الان دیدیم که فرهنگنامه که یه جورایی میتونه مطالعه هم محسوب شه به خاطر اینکه یه جورایی تکلیف درسی هم نیست میتونه اثرات خیلی مفیدی داشته باشه چطوری میتونید کمک کنید حالا که همهتون خیلی علاقه مند و هیجان زده اید سه تا راه دارین که کمک بکنید اولا اینکه متخصص یه رشته ای هستین ترجیحا لطفا علوم زیستی و بنویسندگی علاقه دارین پس و به فرهنگنامه ملحق شید نویسنده فرهنگنامشین فرهنگنامه هر سال نیروی داوطلب جدید میگیره آموزش میده و شما میتونید نویسنده فرهنگنامه باشین خیلی خوبه یا اینکه میتونید فرهنگنامه رو به دست کسایی که بهش نیاز دارن برسونید فرهنگنامه رو اهدا کنید به دوست آشنا مدارس سازمان ها کتابخونه ها که میتونید کمک کنید اینه که اورا وجه فرهنگنامه باشین اگر به جای دسترسی دارین به آموزش و پرورش دسترسی دارین به نهادها دسترسی دارین، فرهنگ رو به اونها معرفی کنید که لازم است که قبلش فرهنگ رو بشناسین. فرهنگ نامه رو به اونها معرفی کنید و از اونها بخواین که از فرهنگ نامه استفاده کنند. یه نکته دیگه که باعث خیلی خوشحالیتون بشه اینه که فرهنگ نامه به تازگی شروع کرده روز رو از جلی یک و قصد داره که الکترونیکی کنه فرهنگنامه را در نتیجه به زودی زود حتی خیلی به ویکیپیدیا هم نیاز نخواهیم داشت و اینکه حتما به سایت مراجعه کنید یا اینکه به اینترنت مراجعه کنید و شماره فرهنگنامه را پیدا کنید و بهش ملحق شین و بهش کمک کنید چون فرهنگنامه بی نظیره ممنون از شما